سیب زمینی های برشته داغ خاکستر نشان نان تازه دهی به یاد نیاوریم زنده یه داریم نگذاریم اترهی هیزوم تر بوی پنیر تازه بینمک شکل ماهی قزلالای خال قرمزی که بر خاک میافتد سرمای سرد شال و کس کردن کنار آن چراغ خوراکپذی کهنه طلمبهی، صدای نفسهای دخترک که تازه به دنیا آمده، از یادمان برود تا باز زمانی به یادشان آوریم. مگر به تو نگفتم که یاد انسان را بیمار می کند، نگفتم؟ عشق تن به فراموشی نمی سپارد مگر یک بار برای همیشه. جام بلور تنها یک بار میشکند. میتوان شکستش را تکههایش را نگه داشت. اما شکسته های جام آن تکه های تیز برنده دیگر جام نیست. احتیاط باید کرد. همه چیز کهنه می شود و اگر کمی کوتاهی کنیم عشق نیست. بهانهها جای حس عاشقانه را خوب می گیرند. این طور است، همیشه هم این طور بوده. چای راه را بر نگاه های بد نمی بندد. لاهیجان شهری است کوچک مثل شهر عروسک های رویا. اینجا نمی توانید بمانید. برای خودتان و ما دردسر درست نکنید. اما اینجا خانه پدری من است. من اینجا به دنیا آمدم، مادرم، پدرم. اموهایم و همه خیشان دیگرم اینجا هستند قطع زمین کوچکی که پدرم در آن چای میکارد اینجاست من کجا بروم؟ کجا بروم؟ جهنم آن روز که هنوز به این روز نیفتاده بودی باید فکر کجا را میکردی حال اگر بخواهی در شهر من در سراسر این منطقه بمانی فقط در زندان برایت جایی هست اینجا امن و امان است دزد و معتاد و سیاسی نداریم و من فرصت نمیدهم یک جفت یاغی بدنام پایشان را توی این شهر تمیز بگذارند و جوانان معصوم مردم را آلوده کنند بانوی من بسیاری از نخستین ها توهم است نخستین روز نخستین ساعت نخستین نگاه نخستین کلمات آاشقانه. یاد عین واقعه نیست، تخیل آن است یا وهم آن. یاد فری بهمان میدهد. حتی عکس خواه راست نمیگویند حتی عکس ها. چیزی بیش از یاد، بیش از عکس، بیش از نامه های عاشقانه. بیش از تمام نخستین ها عشق را زنده نگه می دارد. جاری کردن عشق، سیلان دائمی آن، در گذشته ها به دنبال آن لحظه های ناب گشتن، آشکارا به معنای آن است که آن لحظه ها اینک وجود ندارند. آتشی که خاکستر شده، عزیز من آتش نیست حتی اگر داغ داغ باشد. برادرت از راه میرسد، شاد شاد، با یک بغل سرشاخه و هیمه مرتوب. نگذاریم شعله بمیرد، فریب حرارت را نخوریم، اصل رقص شعله هاست، نگلهای سرخی زیر قبای خاکستر. اصل این حرفها را شوهرت یادم داده، باور کنم یا نکنم. این طور است همیشه هم این طور بوده از میدان در نرو خسته نشو از در به دری نترس کمر خم نکن هیچ تعهدی جز به وجدانت نسپار در پایتخت تخت تهمانده ما را قبول نمی کنند. هیچ کس به ما اتاق نمی دهد. یک زن و شوهر جوان باید اجازه سازمان امنیت را در اختیار داشته باشند تا بتوانند اتاقی اجاره کنند. این اجازه را چطور باید به دست بیاوریم؟ باید بروید به شهربانی مرکز. همونجا راه نماییتان می کنند. این گاه است که میفهمیم حکومت‌های بد، از آشقان حرفهای چقدر میترسند دوستی خبر میرساند که یک طبقه محقر را برای ما آماده کردند البته آن قدرها هم محقر نیست آغاز میکنیم گیل مرد کوچک در بیزمانی آغاز وجود ندارد تو گفتی بیزمانی فقط به عشق تعلق دارد و تمام زندگی عشق نیست نان برای صبح تو گفتی اگر من گفتم گفتم که عشق حقیقی و نان صبح هرگز از هم تفکیک پذیر نبودند مگر آنکه شبه عشقی صودایی و کاملا ریاکارانه در کار باشد عشق های اشراف حتی یک بازی بچگانه زیبا هم نیست اوت خوردنی در خیال بافی های بیمارانه ی شهوانی است. من نگفتم که عشق چیزی است تو بریدی، تو دوختی، تو متهمم کردی به گفتن چنین سخنی. من میگویم و تو هم به اجبار که اگر عشق از کنش روزمره و دهش و گیرش های زندگی معمولی جدا شود، بیشک نان نیروی شگفت رسالت را مغلوب خواهد کرد. نباید، نباید، نباید بگذاریم که دوست داشتنی سرسختانه و اوستوار و با معنی به چیزی صرفا احساسی تبدیل شود گیل مرد بچه شیشه شیر میخواهد و لباس زمستانی و یک زنبیل برای آنکه با خودمان حملش کنیم و چند تا کهنه نو امروز حتما پول می‌آورم برای همه اینها و یک بارانی خوب برای خودت و چند کلاف کاموا و نباید بگذاریم که عشق همچون کبوتری سپید بلند پرواز نقطهی در آسمان باشد اگر عشق را از جریان عادی زندگی جدا کنیم از نان برشته داغ، چای بهاره خوش اطر قوتی کبریت دستگیره گلدار و ماهی تازه عشق همان تخیلات باطل گذرا خواهد بود. مستقل از پوست، درد، وام، کوچه ها و بچه ها، رؤیای کوتا که آغازی دارد و انجامی و نایهان از جای پریدنی و به را احساس کردنی و از دست رفتنی تأصف بار و یاد یاد که انسان را بیمار می‌کند. و خادم درمانده گذشته ها مسافر همیشه مسافر بودن پس آغاز نکنیم ادامه بدهیم گیل مرد کلی وسایل زندگی میخواییم اینها را هم آنها میدهند شاید وام گرفتن گناه نیست و کار گرفتن نمیدانم که دارند یا ندارند اما به هر حال صبر نمی کنیم، حرکت می کنیم. مشکل زندگی را زندگی می کند مشکل به زندگی معنی میدهد. دهد شیرینی زندگی از آنجا سرچشمه میگیرد گیرد که تو بر مشکلات غلبه کنی بدون این غلبه زندگی من خالی خالی است گلها حتی اگر بی آب بمانند احساس هیچ مشکلی نمی کنند و به همین دلیل هم گل خوشبخت وجود ندارد گل عاشق هم گلی که گیلکی بخواند هم